اللهم بسم الله فخمان الحمد لله الواحد الأحد الفرد سمد لم يلد و لم فلم يكن له شريك في الملك فلم يكن له ولي من نفسه و كفر و تكبيرا فصلى و السلام على خير خلقه و شرف بريته سیدنا و مولانا حبیب الاله العالمین المصطفى محمد اللهم و محمد، صلی الله آل علیه و علی و سلم سیما ناموس دهر و امام العصر خجت ابن الحسن العسکری المهدی ارباق و لانت الله على عدایه مجمعین من الان لا قیام يوم الدين خب شب هفتم ماه مبارک رمضان خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مقفرت و آمرزش قرار دهد آمید. اموات و گذشتگان همه ما رو قریق رحمت فرموید آمید. آقابت همه ما رو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 خوب اراذ ما در این شب های ماه مبارک رمضان به حول و قوه خداوند یه شرح کوتاهی بر موعظ امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نامه 21 قم نحجل البلاغه که شب‌های قبل عرض کردم که راست این نامه مملو از مطالب حکمت آمیزه که عمیرالمؤمنین برای امام حسن مجتبی تعبیه کرده و آماده کرده دیروز دیشب به این جمله رسیدیم که امام به فرزندشون می‌فرمایند که یا که ان به ما ترا من اخلاد اهل دنیا علیها و تکالوب هم علیها می فرماید که مبادا اهل دنیا تو رو فریب بدند از اینکه اینها اینا محکم به دنیا چسبیدند و حریصانه حمله می که بهرشون از دنیا بیشتر باشه حرف می دنند دیشبم گفتم از ریشه کلبه حالت اهل دنیا رو حضرت با همین جمله به سگ تشبیه می کند که مثلا اگه الان یه جیفه یه مردار این وسط باشه سگا حریسانه حمله میکنن که یه چیزی از این بکنن میگه اینا فریبت ندن که بگی من عقب میمونم تو هم با اینا مسابقه بدی یه جمله امیرالمومنین دارد همین شبیه همین که الان مثالی که زدم مثل مرداری که سگابش حمله میکنند حضرت فرموده که از دنیا جیفتان و طلابها کلاب میفرماید دنیا جیفه یعنی مردار مرداری بیش نیست سگاب طالبش هستن اونایی که طالب دنیان طلابها کلاب خیلی عجیبه ما خیلی ها دنیا ندارن مثلا خیلی دستشون از دنیا کوتاهه اینا زیادن آدمایی که دستشون به دنیا نمیرسه به دنیا چند تا فوش آبدار میدن میخوان دلشون خونکشه ندارن میگه چند تا فوش بدیم این که توف به این دنیا شروع میکنه میخواد دلش خونک شی. حضرت امیر اینجوری نیم حضرت امیر رئیس حکومت بود و اینجوری صحبت میکرد خیلی عجیب مثلا ما آگاه خیلی آمونی دنیا نداریم به دنیا فوش میدیم این میخوایم خودمون رو تخلیه کنیم اگه داشتیم شاید اینجوری صحبت نمیکردیم اگه ما یه مثلا ای داشتیم تو در روز یه ویلای داشتیم دیگه نمی بودیم توف به این دنیا اما حضرت امیر اینجوری نیست. حضرت امیر نه که دستش به دنیا نمی نه رئیس حکومت بود اونم حکومتی که اصلا سروتر نداشت اون مسلمون ها تقریبا همه جا رو گرفتند دیگه ایران رو گرفتند روم رو گرفتند آفریقا رو گرفتند مثلا حضرت امیر تعییم میکرد که تو مصر کی والی باشه مالکشتر استاندار امیر بوده تو مصر اون تعییم میکرد تو فارس مثلا کی باشد فارس همین ایران ما یا آزربایجان کی باشد استاندار آزربایجان استاندار فارس تا اسپانیا تقریبا رفته بودن مسلمان ها. اندولوس و اینا که اسپانیای امروز اینا همه رو گرفته بودن از این ور تا چین رفته بودن تا دیوارهای چین همه رو گرفته بودن آفریقا رو که کلش رو گرفته بودن یه همچین حضرت میفرماید که اگه من بخوام میتونم از دسترنج خودم حتی بیت المالم نه از چیز عرق ریخته و زحمت کشیده از مغز گندم نون درست کنم خودم بخورم و و بچم بخورن از بهترین های دنیا استفاده کنم از دسترنج خودم میتونم حروم هم نباشه اما هم, هم داده باشه اما میفرمد من انفاق میکنم من نون جو میخورم جو می همه رو میدم به باورنا داشت من همین عائدی فدک من تو یه کتابی از شهید صدر میخوندم صد هزار دینار اون نوشته بود که درآمد فدک بود در زمان رسول خدا که اینا رو به حق زهرا میدادند صد هزار دینار اصلا زندگی شاهانه میتونه از زهرا داشته باشه اما همه رو انفاق میکنه. امیل وقتی آیدی فدک رو میگرف همه رو میداد پشت در خانه از زهرا که میرسید این عباش رو چیزی خونه نبره میگوندن نکنه چیزی مونده باشه همه رو میداد میره نه نداشت نه میگه اگه بخوام از بهترین اصلهای دنیا میتونم استفاده کنم از مغز گندم میتونم نون از بهترین گوشت ها اما من نون جو میخورم نمک میخورم کرباس میگوشم و رئیس حکومت بود بعد راجع به دنیا اینجوری صحبت میکرد از دنیا جیف و این خیلی مهم ما آدم اونجا باشه و ویدیو داره حالا ما دستمون به دنیا نمیرسه خب چهار تا فوش آبدار میدیم میخوام دلمون خونکشیم میگیم ما که نداری وقت هم فوشش بدیم بگیم خودمون نخواستیم دنبالش نبرد. این ما بگیم خیلی عجیب نیه ولی کسی تو اون جایگاه راجب دنیا اینجوری صحبت کند که دنیا مرداری بیش نیست سگا میرن دنبالش میگه فریب اینا رو نخور فریبت ندن اهل دنیا تو هم تو این مسابقه بیای از آخرت باز بمونیم در دنباله ایناگر دیر شب هر چقدر وقت اجازه می داد راجع به این صبح در دنباله اینا می فرماید استدلال کند که چرا من اینجوری به تو میگم؟ گم می گرد ولم یقینا انکل لن تبلغ عملک ولن تعد و اجلک دو تا استدلال می کند که چرا میگم فریب اهل دنیا رو نکنیم مثل اینا هرس نزن نگو عقب میمونیم نه یعنی توجه بفرماید وعلم یقیناً به پسرش میگه که پسرم یقیناً بدون هیچ انسانی به همه آرزوهاش نمیرسه یعنی بدویی هم همینه اینایی که آقا زیاد میدونن اینا هم به آرزوهاشون نمیرسه نامی چیزهایی میخوان که نیست بعدم میدونید دنیا اینجوریه مثلش مثل آب اقیانوسه شوره مثل آب شور هرچی بیشتر میخوری اتشت بیشتر میشه اینای که هم سروتمندترن هریسترن بیشتر هم احساس نداری میکنن فرق میکنن تو همونو ماها نه مثلا ما رو با دو میلیون میشه شاد کرد تو میلیون خیلی یا مثلا بعضی از های خدا با 100 هزار تومان به خدا با 100 هزار تومن بشکم میزنه میره خونش اما اینا رو میلیاردم بدی آقا مشکلشون این چایی که اینا درست کردن با میلیاردم اصلا میگه میلیارد کوشه کار منم برج داره می‌سازه دیگه یکی به من میگفت هر روزی که تفین خود ما میگفت هر روزی که صبح تا شب میشه من چند میلیارد تو این برج بذار هزینه کنم. واسه شما بگو 500 میلیون مثلا بگو واسه من به اندازه سبزی لای دندونم می. هر چی آقا انسان ثروتش بالاتر میره اتفاقا از آرزوهاش دورتر میشه. ولی آدمایی که ضعیفن آقا اینا رو با یک کت شلوار با یه دونه پیرهن ما یه زمانی نداشتیم با یه شکلات شاد میشدیم. بچه بودیم. یه دونه. از آب نبا چوبیا. اصلا چه در نیست دنیا رو به ما دادن. یه مسجد میدادن. یه پیرمردی بود. دست میگذیبه یه دونه از اینها به ما میداد. الان اصلا به بچه ها بدی سوت میکنن. عزن نمیگی. نمیگیره، به زور بدی میده پرد میکنه یه جایی. خیال نکنین آقا هرچی که نعمت زیاد میشه آدم بیشتر لذت میبره نه اتفاقا هرچی چی نعمت زیاد بشه آدم کمتر لذت میبره تاچو خیالا کن پول داره از ما بیشتر لذت نه ما بیشتر لذت میبره هرچی نداشته باشی بیشتر لذت میبره الان دیدین دیگه میان میگن که دیگه بعضیا میان میگن میگن دیگه برنجام بو نداره میگن برنج برنجای قدیم نه برنجا همونه چه فرق میکنه الان زیاد میخورن بعد این سالی یه بار میخورده پدر من میگه ما شب عید به شب عید برنج میخوردیم بوش محله رو برمیداریم الان همون برنجه ولی خب کسی که دو بار سه بار در روز میخوره دیگه به زور میخوره بعدم سیرم هم مادرش میگه بیام میگه سیرم هم حالا میام یه مشو مشی میکنه خب لذت نمیبره بعدم میگه این چیه درست کردیم باییم؟ یا نکنید آقای اون اونایی که ثروت منترن نه نه فقرابه اگر میخواین از تمام لذت ببرین خوب گرس نشین. افتاررا میدونی چرا می چسب چون روزه میگیرین سیر باشه و با نمی چسب آدم تافتون تازه و بد بدم با پنیر و سبزی از چه و کوا میید همچون اما آدم سیر آقا به شیشلیک هم بدی میگه سوزونده خرابش کرده بعد درشت ببره خراب،, خراب کرده رفت. شکرمش سیره خدا شده اونا هم بیشتر خودکشی میکنن چون اصلا ما از هیچی لذت نمیبرن شما یک می کدشوار میگه پونست تا تو نمیدونم کدوم رو بپوشن میگه ورده به نظام چی میخوای به او بتید چون میکنی به خاطر این میگه هرس نزن چرا میگه یقینا بدون هیچ که به همه آرزوهاش نمیرسه پول داران به همه آرزوهاش نرسیدن اونا هم هرس میزنن اونا هم چشم برمیانن چون اونا هم چیزهایی میخوان که نشده مثلا هم میخواد فروشگاه های زنجری داشته شاید میخواد نداره دیگه الان آدمایی هستن آقایون من دیگه وقت توی یه مقاله میخوندم اینا هواپیمای اختصاصی دارن مثلا بو اگر از یه جا میخواد بره یه جا یه هواپیما مثل ایرواز میدید و جا میکنه انقدر سروت من بعد تو این هواپیما سفارش داده استخر زدن سنا زدن چکوزی زدن مثل پنج ساعت که رو هواست میره شنا میکنه تو هواپیما این چقدر هزینه داره خلبان میخواد کادر میخواد فرودگاه باید همه بکنه حزینه ها بده تا این اینجا بلند شد مثلا برای ی اما این آدم شغلش چیه؟ همین همین آدمی که اینو داره. آها. ببین دلال اسلحه شیمیاییه. یعنی حاضر آقا میلیون ها انسان رو به خاک و خون بکشه یه دونه کشتی اختصاصی هم داشته باشه. اونم آقا به آرزو نرسیده. نرسیده. اونم چش در میاره. اتباقا اونها حریص ترن. آنان که قنیترند ترند ترند من اونا بیشتر از ماهرز میزنن دنیا اینطوریه دیگه مثل آب دریا هرچی بیشتر می‌خوری هرفت بیشتر میشه میگه پسرم ول کن خیال نکن اونا هم به آرزوهاشون رسیدن اونا هم لحله میزنن که به آرزوها خدا رحمت کنه امام رو میگه اگه همه دنیا رو الان بدن به رئیس جمهور آمریکا میگه مریخ چه میشه میگه فصلی دنیا رو به من بده آقا اینجا فسطلیه. الان به کسی بگه آقا کاشون مال تو میگه میگه کرمونجی میگیم آقا کرمونجی آقا کاشون رو بخور نسل بخورن تا قیامت بخورن بپاچن دور بریزن تموم نمیشه همون کاشون رو بخور دیگه میگه نه میگه حالا کرمان مال تو میگه قمچی آقا میگه آقا میگه ایران مال تو میگه عراقچی بشر آقایون خیال نکنید همیشه بشر همیشه لحله میزنه می شما کل دنیا میگه مریخچی میگه همه فستلی دنیا میره جنگ ستارگان رو میندازه میره دنبال تصویر کرات میگه مریخ مال تو میگه منظومه شمسیچی میگه ما من میگه کهکشانچی آقا بشین ذره جات مید. انسان هیچ وقت آقا به آرزوهاش نمیره زنه بخاطر هم بزنی همینه اونایی که حریص هم هستن اونام به آرزوهاشون نرسید بلند تعذ و عجلک من دو تا استدلال میکنه یکی اینکه انسان هیچ وقت به و واش نمیرسه دوم اینکه انسان بیش از اجلش نمیتونه زندگی کنه اصلا دنیا آقا تو جمع کنی بعد بری دیگه من مگه چقدر میخوای استفاده کنی مگه این الان بعضی آقا انقدری جمع کردن که اگه خودشون بخورن نسلشون بخوره نواهاشون بخورن تا روز قیامت بخورن دورم به باچن بازم تمام نمیشه خب مگه آدمی آقا چقدر تو دنیا هست نه تو از عجلت میتونی تجاوز کنی نه به آرزوات میرسی حرس برای چی به خاطر این پشت سرش میکد فخفز فطلب در طلب دنیا افراد نکن زیاد روی نکن چون به دارد نمیخوره باید بذاری و بری آدم خزاندار دیگرانه دیگه میذاره میره دیگران حالشو میکنن چوبشو میخوره میذاره برای کی؟ برای دامادش میذاره میخوره فوشش هم میده چون میگه خدا ازش نگذره تا بود که نمیداد بعد مرگش ما یه ای برده. خدا ازش نگفره یا عروسش میخوره بعد و بیران بهش میگه میگه ما خیری از این ندیدیم چه معنا دارد آدم حمل کند برای دیگران بعد حساب کتابش مال این باشد عشق مال دیگران باشد میفرمد تو که از عجلت بیشتر نمیتونی عمر کنی به همه آرزوات هم نمیتونی برسی پس تو کلب دنیا زیاد روی نکن و عجم الفل مکتسب در کسب دنیا اعتدال داشته باش میان رو باش هرس نزن روزید میرسه به خدا نه خوبم نیادم تو خونه بین آدم باید بره دنبال دنیا ولی نه بره هرس بزنه بعد معتدل باشه بعد یه جملاتی میفرماید خیلی شنیدنیه آیون ما چه خیلی از این جملات ها دفت میبریم دفتیه. حالا این جمله توجه بود پشت سرش میفرموید رب بر طالب قد جره الى حرب چقدر این جمله زیباست میگه چه بسیار دیده شده آدمای های حریصی که اموالم نابود کردن حس زده مالش هم از دست رفته ما چقدر آقا رفیق داریم اینجوری نمی‌خوام اسم ببرم بعضیشون شاید اسمشون بشناسیم اینا آدمایی بودن متمکن بودن همه چی داشت خونه داشت ماشین داشت چنتا خونه شات داشت خونش دهه می‌گرفت برای امام همه چی داشت اما حس تمام انبالش نابود شد خونش رفت ماشینش رفت همه چیش رفت دهش رفت چقدر دیده شده آدمای های حریص که سرمایه ها رو همه رو نفله کردن به خاطر اینکه حفظ دادن و همونی که خدا داده؟ خونه داری، ماشین داری، توجه میکنی زندگی آبرومن داری، دهم تو خونت می‌گیری حالا حفظ میزند، اموال رو نابود میکنه حالا این هم میشه این حلاکت رو به اموال برگردون شما شاید بگی آقا نه من آدم دیدم اونام هم هستن آدم اونجوری که هرس زدن روز به روز مال رو مالشون اومد حالا اونو چه جوری معنی کنیم چه بسیار کسانی که برای دنیا هرس زدن معنویتشون از بیندن حلال و حروم و هر دیگه امام حسین دست رو خودش رو حلال کرد این حلالکت رو یه بار میتونیم به مال بزنید؟ یهو میتونی به خودش بزنی که چه بسیار آدمای حریصی که حلاک شدند یعنی معنویاتشون از بین رفت انسانیتشون خودشو فروخت دنیا جمع کرد من میگفتن می‌گفتن فلانی خودشو فروخت وزیر شد خودشو فروخت نماینده مجلس شد خودشو فروخت تاجر شد خودشو فروخ یعنی چی؟ خودشو فروخ یعنی چی؟ یعنی دینشو فروخ، شرفشو فروخ، وجدانشو فروخ، انسانیتشو فروخ سربتمند خبیم حلاب شده دیگه. آدم وقت دینشو بده، وجدانشو بده، انسانیتشو بده، شرفشو بده، سربتمند بجیم حلاب شده دیگه. امره اینجوری بود. اومد به ماویه گفت به ماویه گفت ماویه هرچی علی رو رعا کنه بیاد با تو بیعت کنه دینش رو فروخته گفت تو که نمی‌تونی منافری به صحابی پیغمبر بود امراض پیغم... پیغمبر رو درک کرده بود هر کسی که پیغمبر رو درک کرده میگن صحابی پیغمبر از اصحاب پیغمبر این هم از اونای بود که زمان پیغمبر رو درک کرده بود من ها که نگاه این مردم شام بله مردم شام شام در زمان خلیفه دوم فتح شد این خلیفه دوم حمله کرد شامو گرفت این سوریه امروز اولین استانداری که برای اینجا فرستاد یزید ابن معاویه بود برادر بزرگ که همین معاویه یزید ابن عبیسوفیان ببخشین برادر معاویه برادر عرشدش بود بزرگتر بود مهاوی هم مشاورش بود و مهاوی هم با خودش برد مردمش هم مسیحی بودن اصلا اسلامو از طریق بنی اومعیه شناختن نمیده چیزی از اسلام نمیده هرچی اینا میگفتن رو منبر مشکو کرمد اصلا دو سال بیشتر یزید حکومت نکرد دو سال بعد به طور مشکوکی مرد خیلی‌ها میگن احتمالاً معاویه سر به نیستش کرد. اومد جاش نشست. معاویه اومد جای اون نشست. گفت ممکنه تو امرو بتونی برای مردم شام مشتبه کنی ولی من که ثوابی پیغمبرم من که میدونم که واقعاً کی علی رو رعا کنه بیاد با تو بیاد کنه دینشو داده. گفت حالا من میخوام یه همچین غلطی بکنم یه همچین خفتی بکنم. دین منو چم میخری؟ <تصفح> اینطوری هم. اینطوری هم. یه ده این یه من میخوام رو بفروشم تو چم میخری؟ اون هم گفت بی مادر لا ام ملک خوشش نیومد چون تو جمع بلند شد تو مسجد گفت خوشش نیومد که جلو این همه جمعیت گفتش که من میخوام دینمو بفروشم گفت حکومت مصر رو بهت میدم تو رو چی میکنم که کردم؟ تو رو استاندار مصر میکنن اینا اومد دست و پای معاویه رو بوسید گفت خدا بده برکت آدم لارجی هستی من کمتر از این از اینم میدادم اینا رو میگن لارج گفت واقعا مشتیه. هم, هم خودش میخوره هم به دیگران میته بچا تنها خورنی الان بعضی ها میگن فلولی خودش بن سوار میشه یه دونهم پراید زیر پایی ما گذاشته هواوی دوروریاشو دور این معاویه این هم امراضه این آقای اون دینشون رو میدن شرفشون رو میدن والی مصر میشن تو جنگ هم تو جنگ سفین به معاویه گفتش که من میرم امیرانونی چند تا جمله دارد تو نهجربلاقه میگه عجبا لبن نابقه عرب این دیگه عرب ای کسی رو به مادرش نسبت بده معنیش این که مادرش بدکاره بوده خیلی رشده تو عرب که بگم پسر مادرش و همی که تو زیرت آشورا هم هست لعن الله ابن مرجانه در مورد ابن زیاد گفته شده ابن مرجانه همه ابن زیاده چون مادرش بدکاره بود از اینای بود که بالای خونش چی میزد پرچم میزد این ها پرچم میزدن اون پرچم نشانه ایم میگه ما خودفروشی میکنیم این مادر کی بود نه ابخام داشته باشه دار نه کسی ندونه مشهور بود دیگه اینا. باباش که اصلا مادرش معلوم نبود میگفتن زیاد ابن چی عبی پدرش معلوم نبود مادرش معلومه سمیه بود مادرش باباش بم من... میگفتن زیاد ابن عبی زیاد پسر باباش باباش که گفت هیش <تصفح> پدرش بم من... این... این زیاد بود الان زیاد ابن عبی اولین کسی هم که این لقبو به او کی بود آیشه بود همسر پیغمبر تو نامه براش نوشت زیاد ابن اشکی ایش... که نمیدونی چی بگه ب... این اینو ابتکار کرد گفت زیاد ابن عبی این وقتی نامه رسید میبینه این جور آدمای بودند. وقتی نامه رسید دستش قهر می‌بولن بلند بلند می‌خندید میگو ام المومنی مونده منو به کی نسبت بده؟ <تصفيق> و این نوشته زیاده ابن عبید. میگه مونده به با بای من کی بوده؟ این افتخار میکرد که ام المومنی منو گفته زیاده ابن عبید. پسرش چی؟ وابن مرجانه. تنها کسانی که آیون براشون افتخار محصوب میشد که اینا رو به مادر نسبت بدن اهل وید پیغمبرن. به اینا اگه بگی یبن فاطمه اصلا اوج عوج چون فاطمه هست تو زیارت امام حسین از سلام و علیکن یبن فاطمت از زهران این افتخاره این استثناس تو عرب که اینا افتخار میکرد حالا یه وقاحت ماویه رو بگم من دلم امسوخت اینجا خانه امام حسن خیلی آقایون این جمله وقیه ها نزد. به امام حسن حالا ببینید آقایون ماویه دارد میگد هرکی یه چیزی گفت تو جلسه ماویه اینو گفت به امام گفت اگر شما مادرتون فاطمه زهرا نبود دیگه به چی افتخار میکردین او... این... این تنها افتخار شما اینه که بازم اونم اقرار کرد که از این نمیشه گذشت که شما بچه های فاطمه زهران گفت اگر شما مادرتون فاطمه نبود به چی افتخار که مستاغ آیه تطهیره فقط افتخارش اینه که مادرش فاطمه این همه افتخارات سرشار برای حسن ابن علی که من کدومش رو بگم این فقط افتخارش اینه است که مادر اما با این همه آقا اقرار میکرد که این فضیلت بزرگیه که شما رو به مادر نسبت میدند برای اهل وید افتخار اما اگه غیر اینا کسی رو بگن مثلا این خلیفه دوم اگه بهش میگفتن یبن سحاکه باش، تازیانه میزد میگو منو به پدرم یبن خطاب بگی. اگه بهشون گفتن یبن فهاکه اصلا دیوونه میشد. <تصفيق> نمی‌تون استعامل کنن. عجبا لبن نابغه این كلام این كلام یه خطه اما تو یه خط سه تا تو توبیخ برای امراض. یکیش اینه که گفت مادرت که پرچم میذاد و مشهوره همه عرب میدونن که مادرتو چه کاره بود. پسر نابغه دومین دو که میگه ماویه یه تیکت گوشت انداخت جلوت تو دوم تو براش تکون دادی پارس کردی یعنی حکومت مصر رو به داد تو با او بگرد کرد دست و پاشو رو بوسید این از افرامین میگه یه تی که که گوشت جلوت یه سگ انداخت تو دومه تو تکون داد سه هست که میگه تو جنگ برای اینکه که جونتو حفظ کنی عورت تو کشت کردی که تو فیلم امامالی هم نشون داد دیگه. این تو جنگ سفین اومد به ماویه گفت الان میرم یه رجزی میخوندم تاریفی اصلا گفت فقط تو وایست تماشا کن ماویه هم یه خود نگاهاش کرد به این نمیاد از این حرفا گفت تو رجزی میخونی گفت و سب کن اومد جلو گفت من تو شما هماوردی نمیبینم رو به رو من بتونه وایسته گفت نداریم کسی که بتونه دروت حتی تا همین وقتی اینا رو شنید دیده پای هر میزند خودش اومد میدون اما نقاب زد صورتشو پوشوند کلا خود گذاشت اومد میدون اشعاری خوند که چطور هماوردی تو پیدا نمیشه من هماوردتون گفت من تو کسی رو نشناسم نمیکشم کشم همراه هاست تو بزن کنار من ببینم کیه و برم می کشم. همین از آقا نقاب و زد کنار اصلا همون همونجا سک کند ازت <تصفيق> که حمله بهش کرد فرار... دید. از تعمین این بود آقایم واقعا جوانمرانه می جنگید. ا کسی فرار میکرد دنبالش نمیکرد. می دیگه که این خودش فرار کرد بعد وای میثی رو میکششته. شما اگه فرار می محال بود دیگه دنبالت بر می این دیگه ارزش کشتن نداره به این توجه بفهمید. ای کسی شمشیر نداشت نمی کشتش. توی یکی از جنگ آقا یکی شمشیر شکست حضرت به شمشیر دو. گوه از خود دفاع کن من بی دفاع رو نمی کشم. ما رو زوغ میکنیم میکنیم الحمدلله شمشیر شکست این کارش تمام حضرت نه اول به شمشیر گوه از خود دفاع کن من آدم بی دفاع رو من جبون مردی مجازه نمی داره آدم بی دفاع رو علی در جنگ. این که. اما تنها کسی که تعقیبش کرد همین است حضرت دنبالش ویل نمی‌کنیم میدونید که آقا دنبال کسی نمیاد خودشو پرت کرد از رو از پایین پیاده میدوید دید ادم شلوارشو کشید پایین کشو <تصفيق> <تصفيق> حضرت دیگه روشو برگردون فرمودن که حیف این شمشیر که به خون تو نجس بشه این مرحب کشته این امر بن کشته بعد یه پسلی مثل تو از خونش گذشت تو جنگم شجاعتتون بود <تصفيق> اون شجاعتت در جنگ این پستیته که یه, مش... یه تی که گوشتلات میدازم دومتر تکون میدی اونم که نصبته که مادرت عجبن بعد میگو حالا تو دلسوزه برای اسلام شدید اصلا تو حرف میزنی بعضی اینجورین بعضی خودشون رو میفروشن مال دنیا جمع میکنن اما بعضی ها نه پس یا خودشونو میخرند آزاد میکنن اینا آزادگان اما امام حسین میگه دقا من میخوام آزاده باشم هر باشم حضینش چقدر میگم بعد اکبرتو بدی میگه میدم میگم بعد اسقرتو میگه میدم میگم بعد نسلتو به اثارت بدی میگه میدم میگم رو بدنت اصمی دونیم میگه می کنم. اما زلیل نمیشم خواه من خودم رو نمیفروشم به دونگه اینا آزادگان هم اینا کنند آ امام حسین که دیگه رحبر آزادگاه آقای خیلی فوقل آدازار میگه من از همه چیم اما زلیل نمیشم خار نمیشم خودم در مقابل کسی زلیل حیحات من ان این تو خود میدون جنگ ابن زیاد رو میگه جنو سی لشکرش این ندعی یب ندعی قد رکزه بین سنتاین بین سلط و زلط حیحات منده چی؟ نمیگه ابن زیاد نمیگه امیر میگه این زنازاده مادرش مرجانه بود که پدرش هم زنازاده بود مادرش سمیه بود این, این زنازاده نه امام آب رو کسی رو ببرد همه عرب میدونستان که اون زنازاده نه که امام بخواد پرده کسی رو کنار بزنند که مادر پدرش هم زنازاده بود خدرکه زن بين نسنتاین من اومده بین بی زل و وزل حیات میگه بیا با من دست بده منو با عنوان امام زمان با من بیاد حسن رضا حیاوت من نزله من من خودمو می‌خرم آزاد می‌کنم حزینه شده حزینه داره دیگه آزادگی حزینه دارد سرها در زلف چون کمندش ای دل مپیچ پیچ کانجام سرها بریده بینیم بی جرم و بی جنایت هزینه <تصفيق> دارد آقایون آزادگی من کم هزینه داره آدم بخواد مثل عباسب نه علی زندگی کند مگه کم هزینه دارد دستشو قطع میکنند چشمش تیر میخورد آزاد دیگه آقایون اگه کسی بخواد مثل علی اکبر زندگی کنه من کم هزینه داره نا که مفتی به اینجا نمیزیدن که اگر کسی بخواد مثل قاسم ابن الحسن زندگی کنه مگه کم هزینه داره به خاطر این میفرماید چه بسیار آدمای حریصی که هلاک شدند حالا یا مالو نفله کردن یا خودشونو نفله کردن مثل امرااض بعد یه جمله دیگه بعد میفرماید فلیسه عرضم تمامه این اینم یه توجه فلیث کل طالمن به مرزوق اینم جمله میگه پسرم خیال نکن هرکی کی بیشتر حرف میزنه بیشتر گیش میاد نه خیلی ها زیاد میدوان کم نتیجه میگیرن ولا کل مجملن به محروم و نمونهایی که معتدل دنبال دنیا میرن اینا محروم میشن این خیلی ها خیلی ها ادمای زرنگیان واسه اینو حرف باد میزنن آقا امتیاز میگیرم اینقدر این هر راپه و زرنگه از رو رو که میاد آقا بعد باشی که انگوشتری تو نگیره یه چیزی تو میگیره بعد را تو کچ کنی از اون و بری اینقدر این زرنگه از حرف میدنه امتیاز میگیره همین آدم آقا مستجره هیچی نداره با این همه زرنگی برای اینکه رضاق خدا یکی هم آدم بی دست و پاییه ما میگیم پتست مثلا حرف ی چهار تا خونه داره اون تازه مستجره اینه به این ارتماس میکنه ما دیگه به من با اون همه قدرت به این ارتماس میکنه ما دیگه به من میگه این سما رو بشین بعد پاشی ها چهار رزا خدا هست خیال نکنه نه که زیاد حرس میزنن بیشتر گیرشون میاد اونایی که معتدل دنبال دنیا میرن محروم میشن من یه حدیثی نوشتم از امام صادق اصلا دیگه نمیتونم ایمان ما میکشد این رو بابر کند. امام صادق میگه من فر رزقه اگه کسی از روزیش فرار کنه اونجوری که از مرگ کما یفر رو من الموت اونجوری که از مرگ فرار میکنه لعدرکه هو رزقه روزی میاد خفتش رو میگیده میگه کما یدرکه و موت میگه اگه میتونین از مرگ فرار کنین از روزی هم میتونین فرار کنین. آدمی آقا نه از مرگ میتونه فرار کنه نه از روزی. یکی خواست ببخشید به دوستاش گفت الان میرم پیغمبر رو زایه میکنم پناه بر خدا، نابود بندار. گفت،, گفت گفت نه گفت نه شما وایسین. داشت صحبت میکرد. اومد گفت یا رسول الله این سیب روزی من هست یا نیست؟ خب اگه بگه روزیته پیش خودش گفته بود میندازم زیر پام لحش میکنه میگم خب چطور شما گفتی روزیت اگر هم بگه روزیت نیست یه گاز محکم بالاخره من, من گوه یا رسول الله این سیب روزی من هست یا نه گفت اگه بتونی بخوری روزیت اگه نتونی بخوری نه همینجورم <تصحنت> و بخورم نخورم تو اگه بتونی بخوری روزیته اگه نتونی نه فقط تو یخچال گذاشتی چقدر آقا می‌ذارین تو یخچال خراب میشه دور می؟ روزی ما نبوده به خدا آقا بتونی بخوری چقدر ما تو بانکا پول گذاشتیم مثلا گیرمون نمیاد چقدر یه بار اینجا ایشون اینجا گفتن چقدر آدم آقا خونه ساختن عمر کفاف نرد یه روز توش برن روزیشون نبوده دیگه یکی مثلا از به خاطر اگه کسی روزیش باشه تا اون روزی رو نخورد اجل سراغش نبه. میگن این سیب روزیش شهر رو نخورده بعد این آب سیب رو بعد بخورد اسرائیل بعدا میاد سباهش اگه تو تونستی از روزی فرار کنی از مرگم میتونی فرار کنی از وقت میبین خیال نکنید آنانایی که بیشتر هرس میزنند بیشتر گیرشون میاد اونایی که متدل دنبال دنیا میرن محروم میشن نه رذا خداست. خیلیقا متدل دو همه چی هم دارن. خیلی چشم در میارن هیچی هم ندارند. خور رذا غلقوب و تلمتین ان الله ی الرزق لمن من و یق خدای یادشون نهره آون. یه تو این جلسه کجا بود اینو گفتم تو همین مارم از اون یه غفیق داشتن رو همین تاکسی بود گای میگم زوره مثلا میدون خراسان برم مسجد لرزاده مثلا نماز جماعت و اینا تاکسی رو بذارم کنار یه وضوعی و یه اشبه حالی همین تا میگم بذارم کنار یکی میگه که دروس میست من میگم بیا بالا به ما حسن نه ده نماز میره چهار بعد از منم میشه بهش میگم ایمان البته اینو میگم اگه بری اونجا میای بیرون همون 20 میاد میای بیرون یکی دیگه میگه نیاورون 35 تومن 25 تومن همون میاد عجله نکن حالا اونجوری اینو ندید گرفتی رفتید نماز بعد نماز میبینی یکی دیگه پیدا میشه روزی میرسد نماز تو اول وقت بخو رو. چون <تصفح> روزی میرسه خدا تضمین کرده روزی رو اما نماز تزمیم نکنه. خدا نماز با خودتو. نگفته که نمازت با من. اما روزیت با من. خدا گفته آقا روزیت با من. اما نماز به خودت. نماز صوب به خودته ولی صوبونت با من. خدا این چونی کرد. نماز زور با خودته ولی نحارت با من. خرام برید به خودته. اما اینکه من ادارت کنم لنگ نمونی با من. و رضا رزا ذوالقوت المتين من روزی اندم. من یتق الله یجعل و مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب میگه کسی تقوا داشته باشه من اونجا که حساب نمیکنه میگه آقا مثلا گفت قیتریه موبیل کردیم آقا بیاس بیا نماز تو بخون پیدا میشه از جایی که حساب نمیکنیم میاد از اجایی که فکرشو نمی کردی روزیت میاد گاهی ممکنه میره خونه نهار بخوره همسایه شون میاد میگه که من پسرم یا ما پدرم از کربلا داره میاد میری فرودگاه امام اینه و هشتری بیاری و میدید روخات آر روزی تو میره خاطر این میگه خیال نکن اونایی که حرس میزنن زیادتر گیرشون میاد اونایی که نه معتدل دنبال دنیا میرن محروم میشن. هرزم تمام دیگه وقتم گذشت. امشب دلاتون رو ببرم در خانه موسی بن که 30 شب ما اینجا مجلس داریم. دیگه در خانه این اماما بریم دیگه. تنها امامیه که بهش میگم باب الهوائج. امام ما نداریم بابل افقه رو میگن بابل هوایج عباس رو میگن بابل هوایج اما تو امامات تنها امامی که مشهوره به این که این بابل هوایجه همه جا بین شیعه و سنی شالله کازمین که برین از در که میخوای واردشی نوشته بابل مراد اول میگه که بیهاجت پیش من نیا چشت که میفته به با اون باب یعنی میگه که مراد چیه مراد رو در نظر بگیر داری در خانه باب الهوائج میدی اون عالم احل سنت گفت، گرفتار بودم تو بغداد میدونی اصلا اونجا محل سنی زیاده خیلی هم سنی میاد تو عرمیشون من چقدر دیدم میان اینجای نمازم دست بسته می کنم اون رو باب الهوائج میدونم تعظیم میکنن خواسته هاشون از اون شیعه و سنی تو بغداد میگن این مرد بابل اون عالم اهل سنت گفت میشدم خیلی گرفتار بودم کاردم گرفتار آقا ایسه بهانه میشه دلش میشکنه ناله میزنه مثلا آدم گرفتار یه وقت غروب اذان مغرب میگن آدم یه دفعه آی های میگن آقا اذان میگه نه برای اذان گریه برای گرفتاری خودم میگیرم بهانه میشه این دنبال یه بحانه میگرده گریه کند همین چشمش که افتاد به گمبت موزیه رفع منقلب شد گفت نرسول الله شیعه ها از همه دنیا میان و شما رو بابل هوایج میدانند ما همسایه شما این گرفتاریم گریه گرفت کار من همینجا جاری شد رفت خونه دید گریه باز شده گفت تصادفیه ما ما یه پچ پچ اونجا کردیم اومدیم خونه گره گوه من قبول نمی کنم دو دوباره خودش میگه تا چند بار این مرد رو امتحان کردم حالا منم اقرار میکنم صاحب این قبر باب الهباهی چند <تصفيق> الفضل ما شهدا به العدا فضیلت اون است که بیگانگان گواهی کند هرجام میگن بعضی میگن آقا 7 سال زندان بوده بعضی میگن 14 سال زندان بوده بعضی میگن 4 سال زندان بوده مقداری از عمرش و امام در زندان بوده تو سیاه بوده حلیف سجدت طویله و دموع القذیره یه جا دیگه میگن ز ساغ المرزوز و ز حلق القلوب سلام میکنه به اون آقایی که پاش هم سایده شد به خلقه های زنجیر هفت سال زندان بوده سیا... میگن انقدر آقا این سیاه تو اومو بودند که نه هست الان تو بغداد سیاه چالها هست تو توس هم هست چون هرون رشید خدا لر نداشت کنه قبرش توسه قبرش همین تو با امام رضا یه اونجا هم از این سیاه چالا داره تو توس هم هست تو بغداد هم هست گای سی و پنج تا پله میخوره تا اماق زمین میخوره یعنی میگن شب و روز برای امام تفاوت نمی کرد. شب روز نورش یه اندازه بود اما تو همون جا همش خدا رو شکل میکرد میگو من یه جای خلوتی میخواستم اون که دلم میخواد با خدا راز و نیاز کنم عاشق خدا بود دیگه گوه الحمدلله تو این سیاهچال گوشه زندان سرم رو میذارم رو مور اشق و حالم می... بعد از نماز صبح میگن سرش رو میذاش رو مر از آن زور بر میداشم تمام زیر صورتش گل میشد همشم خدا رو شکر میگم. یه زن بدکاره رو فرستاد هارون تو سیاهچال گفت حضرت شکنجه روحی بده جسمش که در عذابه روحش هم در عذاب باشه این زن وقتی وارد شد یه جمله بگم شبای مارم از اونم از فیلی صفا میده پسر فاطمه صورت چه گذاشته رو خاک هی میگه که ما باید بگیم اینا رو این شباب. جوانات صورتتون رو بذارین رو خاک این شبا بگین از اومد زن من ابدک <تصح> اینه چی؟ یعنی خدایا تو گناه دیگه من شورشو درابار در کنم دیگه خیلی خراب کنم از, از اوم از زن یعنی گناهای های بندت دیگه بی اندازه شد بزرگ شد فلیوه سنول افو من اندک حالا افو بخشش تو میچسبه میکو شده من همیشه میگم هموم کی می چسبه آدم وقتی خو... خیلی کثیف شده باشه. آدم خیلی که کثیف باشه، میره یه همون میگه سبک شده این. توبه کی میچسبه؟ وقتی آدم خیلی رویش آلوده شده باشه. این دارم میگه دیگه. میگه عفو و بخشش تو دیگه الان نیکوه میچسبه. این سم یه خورده گوش و دید قش میریزه مو. گو اینی که پسر فاطمه از اینجور مثل مار به خودش میفیجد. گفت من زن بدکاره که بیشتر بد همون جا افتاد رو خاک. ای صدا میزد از اوم از زن منعب. خدایا من دیگه شورشو در آوردم. عفو میگفت و عشق میری. آوردنش میشه هارون. هارون گفت من به تو پول دادم بری زندان این کارا رو بکنی. یه نگاهی به هارون کرد گفت خجالت نمیکشی این آقا رو تو سیاه چال نگه میگم می بیرونش کرد این زنه رو. تا زنده بود این زنه کار جمع بود. اکثرا رو سجده بود همش هم این ذکر رو می گفت. شب هفتم جوون ها. میگن آجون یه نگاهی به ما بود. ما هم عوض کن این چند روز حال و هووامون عوضشه. امام یه نگاه به شما بکنه عوض میشین همونطوری که زن بدکاره عوض میشه. هی هم گزارش میومد برای آرون که این عمش داره خدا رو شکر میکنه عمش آرون هم خیلی عذیت میشد میگو من اینو تو سیاچه انداخته انداختم آخر سندی ابن شاهک بلند شد گفت بسپرش به من هارون من قول میدم دیگه از این گزارش ها برات نیاد بعضی میگن یهودی زاده بود به خدا من اوناشو نمیدونم برای دیدم بعضی میگن یهودی زاده بود این سندی ابن شاهد گفت برو تحویلش بگی من از امام زمان اما من... حقش رو ادا کنید از امام زمان معذرت میخوام از شما من من تو تاریخ دیدم همین وارد سیاه چال شد صد تا تازیانه به وصف مچه گفت خدا رو شبت میکنید چر رو نگذشت دیدن دیگه از اون حرفا نمیزنه ای میگه یا مخلص شجر ای خدایی که درخت و از تو دل زمین نجات میدی ای خدایی که شیر و از سین خلص نیم هارون هاروز میگه دیگه من از شر که این دعا مستجاب شد اونجایی که شیعه اومدن پشت در زندان میگن امرو موسط جعفر رو آزاد میکنه چیه ها جمع شدم یکی میگو اگه من ببینم دستشو میگوسم یکی میگو میرم مدینه مصرومه رو خبر میگو. که وقتی دیدن در زندان باز شد چهار تا هممال یه تخت پاره رو گرفتن سر از یه طرف آویزونه پا از یه طرف یه هممالم جلو جلو میره میگه هازا امام رفزن س ایمان ارم تمام میخوام کرولام ببرم تو میخوام یه ناله ای هم بزنین کرولام می اموی آرون بود گفت اگر این آدم معمولی چرا میبرنش قبرستان قریش که مال بزرگانه؟ اگه بزرگ چرا اینجوری خفیف میبرن؟ گفت این مصبت نشه وقتی گفت موزه گفت بدنو رو این زمین. چقدر آقا اومدن گل ریختن رو این بدن تشی کردن قس دادن کفن کردن چقدر چفنای قیمتی به تنش با احترام آوردن تو این قبرستان قریش به خاک سپردن اما بگیم لا یاوم که یون که یا ابا عبدالله اما دلها بسوزه برا اون آقایی که سه روز و سه شب رو خوابهای داب کربلا صلی اللف علیکه یا عبد عبدالله